گرامیان درود بر شما فایل آوایی دهم از کتاب برهان علیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نون رو با هم آغاز کنید. صفحه 103 عنوان نهم نه برهان علیت و رد وجود بهشت و جهنم مومن در حالی که فنجان قهوهش را در دست گرفته بود تا کمی خنک شود گفت میخواهم اعترافی کنم. ناباور که نمیدانست باید منتظره چه اعترافی باشد پرسید. در واره بحث های گذشته که نیست چون اصلا انتظار ندارم بخواهی اعتراف کنی که هر آی مرا قبول کرده ای. مومن درست است که حرفهای تو برایم چندان قابل قبول نیست اما نمی این حرف را می‌زدی معنی حرف تو این است که مرا لجباز می‌پنداری ناواور معذرت می‌خواهم اما به هر حال تفکرات ما به سادگی تغییر نمی‌کنند و درجه‌ای از لجبازی در طبیعت ما وجود دارد مخصوصاً اگر صحبت از مقدسات و اعتقادات دینی باشد بگذاریم. اعتقاپت درباره چیست؟ مومن اتفاقا درباره همان اعتقادات است. راستش من پیش از این در حین عبادت و نیست در دعای پس از نمازم بنا به های مذهبی سعی می‌کردم با لحنی حاکی از عجز و درماندگی و همراه با ناله دعایم را به درگاه خدا عرضه کنم. بعد از بحثی که هفته پیش داشتیم و پس از اینکه بیشتر به مفهوم تغییر ناپذیری واجب وجود فکر کردم، هر بار که میخواستم عیز و ناله را به لحن و آهنگ دعایم اضافه کنم، به نظرم میرسید که کاری عجیب و غیر ضروری است. خلاصه در روزهای اخیر، اگرچه همچنان دعا میکنم، اما نمیتوانم خودم را راضی کنم تا آن را به ناله و زاری مزین نمایم. نمی دانم که آیا این یک پیشرفت است یا یک پسرفت؟ ناباور فکر می کنی چیزی که در پی تفکر و تعقل برایت حاصل شده ممکن است پسرفت باشد؟ مومن به هر حال توصیه های الله چیز دیگریست و آنها این را که دعا همراه با تضرع باشد بهتر و ارجه می دانند. ناباور آیا اگر تعقلت به تو بگوید توصیه‌های مقدسین دینت عقلانی و درست نیست، به عقلت بی اعتنایی خواهی کرد و آن را در برابر مقدسین و اولیای اسلام بی اعتبار خواهی دانست؟ ممن عقل ما نقص دارد و پیامبر و ائمه عقل کل هستند. دانش آنها از نزد خداست. ناباور من و تو در حال بررسی عقلانی بودن گفته های دین هستیم این یعنی ما تا زمانی که عقلانی بودن سخنان دینی ثابت نشود آنها را قبول نخواهیم کرد آیا بالاخره تو پذیرفته ای که اولویت با قوه تعقل خودت هست یا نه اگر فکر میکنی هر آنچه از مقدسین دینت به تو رسیده اقلانی است ولو اینکه با عقل و اندیشه تو غیر اقلانی جلوه کند دیگر چرا بحث فلسفی می کنیم؟ من می به تو ثابت کنم عقلانیست وگرنه به من که قبلا ثابت شده است. اقل از طرق دیگر ثابت شده است که دین اسلام حق است. ناباور یعنی من دارم وقتم را تلف می کنم؟ یعنی تو اصلا به تعقل خودت اعتماد نداری؟ ممن. اعتماد دارم اما بعد از اینکه یکبار یک بار اثبات کردم که خدا وجود دارد و محمد پیامبر اوست از آن پس سخنان ایشان را برتری می دهم. به این ترتیب تا زمان اثبات اصول دین اولویت را به عقل خود دادم. ناباور گرشه فکر می کنم ایمان تو از افتدا تحت تلقینات اطرافیان و رسانه ها در تو شکل گرفته. اما با این حال فرض می‌کنیم تو یک بار از عقل خودت استفاده کرده باشی و دینت را پس از یک نقادی جانانه پذیرفته باشی آیا فکر نمی کنی که شاید اطلاعاتی که بار اول مورد استفاده عقلت قرار گرفت ناقص بوده باشد و این حق را داشته باشی که مادام عمر با افزایش اطلاعاتت دوباره و دوباره دینت را نقادی کنی آیا همان بار اول تمام قرآن را خوانده بودی تا مطمئن شوی هیچ کلام غیر معقولی در آن نیست آیا همان بار اول حرفهای مخالفین دینت را شنیده بودی تا مطمئن شوی نكتهای در ذهنتو مقفول نمانده باشد ناسلامتی میخواستی یک عمر با ایمانت زندگی کنی و بر احکام و قوانین دینت گردن بگذاری مومن چند ثانیه فکر کرد و خواست چیزی بگوید که ناباور پیش از او گفت بگذریم همین که میگویی یک بار اصول دینت را با تعقل اثبات کرده ای خودش قدمی است پس بیا ادامه دهیم ببینیم آیا همین اصول دین تو عقلانی یا نه خدای دینت که عقلانی نبود اکنون نوبت معاده است مؤمن با چهرهی حق به جانب سرش را به علامت تاسف تکاند و گفت بسیار خب شروع کن ناباور گفتی که هر چیز که نبوده و به وجود آمده را پدیده می نامی. گفتی که هر پدیده باید علتی داشته باشد. گفتی که سلسله علت و معلولها باید با یک واجب الوجود شروع شده باشد. مومن درست است؟ عنوان خلقت به چه روش هایی ممکن است؟ ناباور ما سلسله هایی از پدیده های پیاپی -پی را ملاحظه می کنیم. فکر می کنم پدیده پیاپی -پی به دو طریق می توانند مخلوق آن واجب الوجود باشند. طریقه اول این است که واجب الوجود پدیده اول را به وجود آورد و آنگاه پدیده اول علت تامه پدیده دوم شود یعنی به واسطه وجود پدیده اول پدیده دوم به ناچار به وجود آید. آنگاه پدیده دوم، علت تامه پدیده سوم شد و به همین ترتیب سلسله پدیده ها به وجود آید. مومن تا اینجا مشکلی نیست. طریقه دوم چیست؟ ناباور طریقه دومی که واجب الوجود می تواند نست به خلقت بزند این چنین است که پدیده هایی که پشت سر هم می بینیم رابطه علی با هم نداشته باشند یعنی پدیده اول علت تامه پدیده دوم نباشد بلکه پدیده ها یک به یک و پشت سر هم به وسیله همان واجب الوجود خلق شود در این حالت واجب الوجود همچون یک انیمیشن ساز که تصاویر را یک به یک خلق کرده و پشت سر هم قرار می داد پدیده ها را پی در پی خلق می‌کند برای کسی که پدیده را پشت سر هم مشاهده می کند، قابل تشخیص نخواهد بود که این پدیده‌ها ها با یکدیگر رابطه اللی دارند یا اینکه همگی یک به یک توسط وااجبل وجود خواهد می شود و هیچ رابطه علت و معلولی با هم ندارد. ناباور به مومن نگاه کرد و منتظر عکسول عمل او شد. مومن کمی فکر کرد و گفت: « بله، این هم ممکن است. ممکن است همانطور که گفتی خدا همچون یک انیمیشن ساز پدیده ها را پشت سر هم خلق کند اگر این کار را بر اساس یک ضابطه و قانون همچون قوانین فیزیک انجام دهد ما تصور خواهیم کرد که پدیده ها علت هم هستند چرا که همواره بعد از یک پدیده مانند آتش پدیده بعدی مثلا گرما اتفاق میافتد. اگر انیمیشن همیشه پس از الف ب را خلق کند پیاپی بودن همیشگی این دو پدیده این تصور را در ذهن ما ایجاد میکند که اولی علت دومی است. اما در حقیقت ظابط مند بودن کار آن انیمیشن ساز است که این توهم را در ما به وجود می آورد. به هر حال تا اینجا مشکلی ندارم. ناباور آیا فکر میکنی حالت دیگری از خلقت هم ممکن است؟ مومن ترکیبی از حالت اول و دوم هم ممکن است. یعنی گاهی زنجیره‌ای از علت و معلول های پی دربه ایجاد شوند و گاهی واجب الوجود در این زنجیره دست برد و خودش پدیده ای را مستقیم و بدون واسطه خواهد کنند. ناباور فکر میکنم اقلا اشکالی به این حالت وارد باشد. اما فرض را برین میگذاریم که این هم ممکن است. یک حالت دیگر هم این است که واجب الوجود انیمیشن ساز پدیده ها را نه بر اساس زابطه بلکه گاهی زابطه و گاهی بدون زابطه خلق کند. یعنی گاهی بعد از پدیده الف، پدیده بی را خلق کند و گاهی بعد از الف، پدیده جیم را خلق کند. به این صورت گاهی بعد از آتش گرما خلق می شود و گاهی بعد از آتش سرما خلق می شود. مومن. بله این هم غیر ممکن نیست. حتی ممکن بود که واجب الوجود همچون یک انیمیشن ساز عمل کند. ولی همیشه بدون زابطه پدیدارا را خلق کنند. اما این امکان ظاهرا محقق نشده و ما وجود زابطه را تشخیص می دهیم. کشف قوانین فیزیک همان تشخیص وجود ذابطه است. فقط نمی‌دانیم که این ضابطه در اثر این است که پدیده های پیدر پی رابطه علی دارند یا اینکه چون واجب وجود انیمیشن ساز پدیده ها را پیدر پی و زابط من خلق می کند. این قوانین جل به ناباور بسیار خوب کل این حالت ها زیر مجموعه همان دو حالت اصلی هستند که اول گفتم یعنی در مورد هر پدیده که دست روی آن بگذاریم این طور است که یا واجب الوجود از طریق خلق یک پدیده به عنوان سر سلسله یک زنجیره از علت و معلول ها دست به خلق آن پدیده خاص می زننن. یعنی پدیده علف را به عنوان سرسلسله خلق می و پدیده الیف ب را به وجود می و به همین ترتیب پیش می تا به پدیده خاص مورد نظر منتهی شود و یا آن پدیده خاص را خودش مستقیماً خلق می به هر حال بر اساس برهان ادلیت هیچ پدیده نیست که بدون علت خلق شود و هیچ پدیده نیست که واجب الوجود به طور مستقیم یا غیر مستقیم علت آن نباشد پذیرش امکان وجود حتی یک پدیده که بتواند خارج از این دو حالت به وجود آید به این معنی است که جهان می تواند واجب الوجودی نداشته باشد و دیگر امکان اثبات وجود واجب الوجود از این طریق منتفی می شود. مؤمن بله درست است ناباور خود ما انسان ها هم از جمله پدیده های جهان هستیم. ما هم نبوده این و به وجود آمده ایم. ما نیز نیاز به علت داریم. ما نیز زمانمند هستیم و تغییر می کنیم. تمام جنبههای ما و لحظه های ما پدیده هستند. از جمله این جمعه و لحظه های ما، میل، اراده و عمل ماست. اگر با این حرف مخالفتی داری بگو وگرنه قبول کن که میل و اراده و عمل ما نیز مخلوق واجب الوجود است اینکه واجب الوجود بهشت و جهنمی برای پاداش یا جزای امیال و اراده ها و اعمال ما تدارک ببیند قابل قبول نیست اوست یا بهتر است بگویم آن است که مستقیم یا غیر مستقیم امیال و اراده ها و اعمال ما را خلق کرده است آن است که یا به شیوه ای انیمیشن ساز به طور مستقیم یا با خلق زنجیری از علت و معلول ها به طور غیر مستقیم امیال، اراده ها و افعال ما را خلق می کند چلونه می شود که از طرفی خودش اعمال و امیال ما را خلق کند و از طرفی انتقام اعمال و امیال ما را بگیرد و ما را مجازات کند ممن آنچه تو پیش کشیده‌ای همان مسئله قدیمی جبر و اختیار است این مقوله همواره مورد بحث و گفتگو بین فلاسفه بوده و هیچ نتیجه قطعی هم به دست نیامده است ناباور مگر فلاسفه در مورد وجود خدا نتیجه قطعی به دست آورده هست. فلسفه مانند علم فیزیک نیست که بتوان با تکرار یک آزمایش در حضور دانشمندان سراسر جهان دهان مخالفان را بست فلسفه یعنی اینکه ادعا می کنی میخواهی بدون هیچ تعصب و جانبداری به حقیقت مطلبی دست یابی فلسفه یعنی اینکه میخواهی آزاد بیاندیشی اندیشهت به هیچ نتیجه دلخواهی زنجیر نشده باشد. فلسفه یعنی برایت مهم نیست که نتیجه اندیشت همان است که دلت میخواهد باشد یا نه. اما مشکل اینجاست که در تفکر فلسفی به دلایر مختلف مسیری را که ادعا می کنیم میخواهیم بپیماییم نمیپیماییم. تمایل ما به رسیدن به نتیجه این مطابق با باورهایمان اجازه نمیدهد که همیشه به سمت نتیجه منطقی اطلاعاتمان تکیه ترمیم کنیم. از جهتی دیگر، اطلاعات ما نیز گاهی ناقص است و زیربنای خوبی برای نتیجه‌گیری درست نداریم. به هر حال، ما تو بگوییم که چون آرای فلاسفه مختلف در مورد یک سوال مثل خدا و یا جبر و اختیار یکسان نیست، پس نمیتوان به نتیجه ای رسید. ما نمیدانیم که طرفداران کدام نظر مسیر درست را برای رسیدن به پاسخ انتخاب اند. ما نمیدانیم کدامشان اطلاعات کافی و پایعی درست و یا مبانی معرفتی مطمئن را زیر بنای مسیر فکری خود قرار ندادهاند. ما نمیدانیم کدامشان با جانبداری از یک نتیجه دلخواه دست به مغالطه با خود و دیگران زدهاند. ما هیچ کدام از اینها را نخواهیم دانست مگر اینکه خودمان دست به کار شویم و سعی کنیم قدم به قدم جلو برویم مؤمن ارزش این کار در چیست چرا مهم است که ما مسئله جبر و اختیار را حل کنیم ناباور اگر تو معلم دینی بچه های این کشور نبودی شاید مهم نبود اما تو معلم و یا بهتر بگویم مبلغ یک دین هستی که اگر خودت نتوانی با دلایل عقلی از درستی آن دفاع کنی و یا حتی بدتر اگر دلایل عقلی بیابی که این دین و ادعاهایش را باطل اعلام کند ناچار باید دست از این شغل بشویی تا عملی شرافتمندانه انجام داده باشید اگر تو با برهانی به نام علیت وجود یک واجب الوجود را ثابت کنی و نتایج دیگر همین برهان در کنار اثبات واجب الوجود این باشد که ناچار این واجب الوجود نمیتواند صفاتی که در دینت برای خدا گفته شده را داشته باشد و همچنین ناممکن باشد که این واجب الوجود بهشت و جهنمی برای جزای ما تدارک دیده باشد. آنگاه معلوم میشود که این برهان که تو قبولش داری برهان ابتال خدای دین تو و معاد دین توست و تو و تمام فلاسفه متدین که از این برهان استفاده کرده اند هر کدام به دلیلی از جاده آزاداندیشی و حقیقت جویی منحرف شده اید آنجا که برهان به نفعتان بوده از آن استقبال کرده اید و سپس چشم به نتایج غیر دلخواه دیگرش بسته اید مومن مطمئنم که چنین نیست و من هفته آینده دلایل رد جبر و اثبات اختیار را برای تو بازگو خواهم کرد گرامیان همینجا در صفحه 109 فایل آوایی دهم از کتاب برهان علیت رو پایان میدیم تا درودی دیگر بدرود